به نام خدا با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز داستان شیرفکنان افسانه داستان شیرفکنان افسانه تنظامی زیست که ضمن آن دیدگاه مردمان روزگاران گذشته را نسبت به حکام خود بیان می کند. پادشاهی که از عهده نابود کردن موشهای مزاهم برنمی آید و یک روستایی به سادگی سر او کلاه میگذارد. این افسانه ما را به یاد داستانهای سالتیکوف شچدرین تنز نویس بزرگ روسی می اندازد که در کتاب قصه برای بزرگ سالان به ترجمه باغیر مؤمنی و نوشتن داستانهایی توانایی روستاییان را در برخورد با حوادث مختلف نشان می دهد. این افسانه افسانه 21م از کتاب سی افسانه امیرقلی امینی است که در اینجا میآوریم. شما رو به شنیدن اون دعوت می کنم. مرد فقیری بود که به هیچ وجه کار و کاسبیش در شهر خودش نمی گرفت. یک روز با خودش گفت خوبه که از این شهر به شهر دیگه ای برم. شاید کارم خوب بشه. رفت و رفت تا رسید به یک شهر بزرگ دید اینجا هنگامهی برپا هست و خیلی شلوغه از یکی پرسید اینجا چه خبره؟ گفت شاه ما پسر نداشت نظر کرده بود که اگه خدا بهش پسری بده همه مردم شهرش رو سه شبانه روز پذیرایی کنه و شام و نهار بده مرد فقیر با خودش گفت خوب منم برم و مهمان شاه بشم و پیشرفت داخل قصر شد دید در یک تالار خیلی بزرگ سفره انداختن و عدهای خدمتکار ایستادن. عوض اینکه مگس بپرانند موش میزنند. مرد فقیر پیش خودش فکر کرد که اگه این شهر گربه داشت لابود اینقدر موش نداشت پس اینا گربه ندارن که ناچارم با چوب موش رو بزنن حالا اگه من گربه اینجا بیارم لابد پادشاه انعام خوبه به من میده فورا رفت پیش یه نفر و گفت منو ببرید حضور پادشاه گفتن تو سر و وضع خوبی نداری و ما نمیتونیم تو رو به حضور پادشاه ببریم یه نفر دیگه رسید و گفت با این بیچاره چه کار دارید بیا تا من تو رو به حضور پادشاه ببرم با هم به طرف قصر شاه رفتن همین که رسیدن اون مرد جلو رفت و از شاه اجازه گرفت سپس برگشت و مرد فقیر رو به حضور شاه برد. وقتی خدمت رسید ارس کرد قربان در شهر مایه جانوری هست که دشمن این موشهای شهر شماست. اگه اجازه بدید من برم و یکی از اونها رو همراه بیارم. شاه خیلی خوشحال شد و دستور داد ست تومن با یک اسب بهش بدن تا بره و یکی از اون جانورها رو بیاره. مرد فقیر خیلی خوشحال شد. رفت و ستومن منو گرفت و سوار شد و به تاخت رفت به طرف شهر خودشون. بعد یک گربه بزرگ و پرزوری رو گرفت و بعد از چند روز به قصر آورد. امدن صبر کرد. وقتی شاه سر سفره نشست خبر داد که من با اون جانور اومدم. شاه فوری اهزارش کرد و گفت اون جونوه رو آوردی؟ گفت بله قربان و دست کرد توی توبره و گربه رو در آورد و ول کرد میون اتاق گربه تا چشماش به اون همه موش افتاد مثل شیر حمله کرد و از این طرف به اون طرف میدوید و هی موش تیکه و پاره می کرد. ولی موش به قدر زیاد بود که از پس همه برنمی اومد گربه مات مونده بود که با این همه موش چکار کنه شاه خیلی تعجب کرد و رو به اون مرد کرد و گفت مگه در شهر شما از این جانورا فراوانه مرد فکری کرد که اگه بگه خیلی هست رونق کارش میشکنه گفت قربان هست ولی نزیاد شاه گفت بسیار خوب یک اسب دیگه با صد تومن پول بهش بدین تا بره و. یکی دیگه بیاره مرد رفت و پول و اسب رو گرفت و بعد از چند روز یک گربه دیگه آورد شاه دید این دوتا هم از پس این همه مشبر نمیان دوباره یک اسب و ست تومن پول داد و مرد رفت و گربه دیگه رو آورد خلاصه چندین بار مرد رو فرستادن رفت و هر دفعه گربه آورد هر دفعه میگفت قربان من این گربه رو با هزار زحمت به چنگ آوردم وقتی چند صد تومنی گیرش اومد ترسید که مبادا پادشاه پشیمون بشه و دستور بده که پولا رو ازش بگیرن پس سوار بر اسفش شد و گفت من دیگه چون زن و بچه‌ام تنها هستن بر نمی گردم. یکی از وزیرها ازش پرسید که اسم این جانوری که آوردی چیه؟ مرد گفت شیرافکن. مرد سوار شد و به تاخت از شهر بیرون رفت. شاه رو به وزیرش کرد و گفت خوب حالا خوراک این ها چیه؟ یکی از وزیرها عرض کرد باید از خود اون مرد میپرسیدیم شاه دستور داد برن و مرد و بیارم دستور رو گفتن مردی سوار شد و رفت سواری عقبش فرستادن اون مرد همینطور که داشت میرفت رو به عقب کرد و دید سواری به دنبالش داره میاد خیال کرد اومده که تومنا رو پس بگیره شروع کرد به تاخت کردن مرد سوار که پشت سرش بود بنا کرد به داد زدن که ای مرد بیست با تو کار دارم مرد گفت چه کار داری؟ سوار گفت میخوام بدونم خوراک اون جانورا چیه؟ مرد اومد بگه که خوراک اونها گوشت و کله و استخونه اما از بس حواسش پریشان شده بود و نگران پولش بود گفت کله شاه این خبر به گوش شاه رسید شاه خیلی ترسید و فوری قصرشو خالی کرد و زن و بچه رو برد به قصر دیگه و مدت زیادی که از این ماجرا گذشت یه روزی شاه دستور داد یه نفر بره ببینه که این شیرفکنها چه کار میکنن یه نفر که خیلی دلاور بود سوار شد و اومد پای قصر عصب خودش رو به یک درختی و خودش وارد قصد شد. از اون طرف بشنوید شیرفگنی که توی یکی از پنجره‌های قصد نشسته بود و به این طرف و اون طرف نگاه می کرد. اومد که از پنجره رد بشه افتاد پایین روی زین اس عصب رم کرد. افسارش برید و بنا کرد به تاخت و تاز کردن. شیرافکن از ترس اینکه نیفته چنگالش رو محکم فرو کرد توی زین اسب داشت رو به قصر شاه میتاخت و میرفت شاه دم قصرش نشسته بود که ناگهان دید ای وای یکی از ها سوار بر اسبه و مثل تیر داره به طرفش میاد شاه همین که چشمش به شیرافکن افتاد بی اختیار نعره‌ای زد و بیهوش شد رفتیم بالا ماست بود قصه ما راست بود پایین اومدیم دوغ بود قصه ما دروغ بود داستان شیرفکنان سی افسانه از افسانه های محلی اصفهان گردآورنده امیرقلی امینی با مساعدت هنرهای زیبای کشور چاپ اول 1339 خوشیدی شنوندگان عزیزم امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید و در داستان بعد هم منو همراهی کنید شما رو به خدا می سفرم. کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می سلش مهران دوستی تی ام ای نشانی وبلاگ ما m e h r a n d o u